قامل توجه کلیه سازمان ها و ها و ارگان ها که دولتی و شعراب مخترم نگهبان دیگر نگران نفوذ و رهنه دشمنان و عناصر وابسته به غرب نباشید شرکت خدمات امنیتی حفاظتی نفوذ ناپذیران بلاویت مفتخر است با ارائه سیستم پیشرفته نفوزیاب بسیرت دو افراد غیر ولوبی و نفوذی را با دقت بالا شناسایی نموده، و از تایید سلاویت و ورود ایشان به پوشتاب حساس لشکری و کشوری جلوگیری نموده تشخیص اپتیکی با بررسی دیجیتال عناصر چهره شامل تجزیه و تحلیل ریش، جاگ مهر، مدل مو و شکل یخی لباس و سایر المانهای ظاهری. تست بویابی با استفاده از سنسورهای حساس به بوی گلاب اتر نرگس مشک خوتن و سایر های ایمانی سنسورهای فوق حساس به رنگ با قابلیت ردیابی و تشخیص رنگ سبز حتی در لباسهای زیر ترح سؤالات هوشمند عقیدتی سیاسی همراه با نكاط انحرافی برای اندازگیری و تعیین سطح بسیرت متقازیان رندم تصاویر و پخش صدای مقام معظم رهبری ارواح و نافدا در هنگام مصاحبه و ثبت دقیق واکنش های ناخودآگاه متقاضیان شامل فشار خون، زربان قلب، تغییر اندازه مردمک چشم و اندازهگیری سطح ها در خون برای اطمینان از درجه خلوص و ذوب شدگی متقاضیان <تصفيق> سیستم نفوذ یا به پیشرفته بسیقت دو دیگر نگران نفوظ عناصر دشمن نباشید شرکت خدمات امنیتی حفاظتی نفوذ ناپذیران بلایت